بسم الله الرحمن الرحيم الظاهر والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ميقى الظاهر لفظي أسكي محتمل الدماني هست احتمل أمرين أحدهما يكي أزون دمانا أظهر من الآخر ظاهر تار هست أزديجري موقعی ما بیتونیم دو تا برداشت داشته باشیم ولی یک برداشت ظاهرتر باشه از دیگری اینو میگن ظاهر و مرجوهش رو میگن چی؟ معول و تعویل و اول و ظاهرو به دلیلی و تعویل میشه ظاهر با دلیل یعنی ما معنای تعویل معنای مرجو ميگيريم میگیریم و یو اول الظاهرو بد و تعویل کرده میشه ظاهر با دلیل یعنی معنای ظاهری رو نمیگیریم بلکه معنای مرجوه رو میگیریم پس زمانی که دلیلی وجود داشته باشه معنای لفظ رو از ظاهرش صرف میکنیم به معنای مرجوه و یسمه رو به دلیل از اینجا به بعد مؤول ظاهر نامیده میشه اگر دلیلی اومدو ما رو گفت معنای ظاهر مراد نیست و بلکه معنای مرجوح مراده این در جاهای نمود پیدا میکنه مثلا در حقیقت و مجاز در حقیقت و مجاز اصل بر این است که معنا بر حقیقت حمل بشه ظاهر همینه ولی اگر دلیلی اومد و ما رو گفت که قرینه اومد و ما رو گفت که اینجا مجاز معنا مجازش هست اون موقع ما معنای مرجوه رو میگریم و همین مرجوع دیگه اینجا ظاهر نامیده میشه چون دلیلی وجود داره در مسئله تقدیر و عدم تقدیر جمله اومده است مانند وجاء ربک اینجا ما اکتفا میکنیم به جا ربک این ظاهر هست اما تعویل میتونیم بکنیم وجاء امر ربک امر ربک یعنی رو مقدر کنیم این دیگه معنای مرجورش هست و بدون دلیل نمیشه این کارو رو کرد همانطور که بدون دلیل نمیشه معنا را از حقیقت به مجاز برد و در مطلق و مقید نمیشه مطلق رو مقید معنا کرد بدون دلیل و در عموم و خصوص نمیشه امرو معنیش رو خاص کرد بدون دلیل چون حقیقت اکتفا کردن به ظاهر جمله و حمل کردن معنا بر مطلق و حمل کردن معنا بر همون عموم این ظاهر هستند و اگر ما بریم روی معنای مرجوف اون موقع ما تعویل ایم یعنی ظاهر رو رها کرده ایم و تعویل رو گرفتیم البته اگر دلیل باشد یعنی دلیلی باشد که به ما بگوید مثلا اینجا عام برخاص عام خاص بشه افرادی ازش خارج بشه اون موقع دیگه همین معنای مرجو خودش چون دلیل وجود داره ظاهر نامیده میشه ولی بدون دلول همچنین چیزی روا نیست نه الهاز ادبی و نه الهاز شرعی پس تاویل خودش ظاهر و معنا کرد مونده الان معول مؤول در معنای لغوی معنی بازگشت هست و در اصطلاح حمل کردن لفظ به معنای مرجو میگن فلانی اهل تعویله یعنی معنای ظاهر رو میکنه میره معنای مرجوه رو میگیره البته این زمانیه که معنای مرجوه وجود داشته باشه گاهی موقع اصلا شما میره یه لفظی معنای مرجوهی نداره به یک معنایی میبرد که اصلا وجود نداره اینجا دیگه همون تعویل فاسد و باطل هست تعویل زمانی صحیح هست که اولا لفظ قابل تعویل باشد دوما دلیلی وجود داشته باشد اون هم دلیل درستی که به ما بگوید اینجا معنا، معنای ظاهر رو نگرفت و معنای مرجوح رو گرفت و سوما سببی برای تعویل وجود داشته باشد در غیر این صورت تعویل تویل فاسدی خواهد بود تعویل تعویل باطلی خواهد بود لذا اینی که بگیم اصلا تعویلی وجود ندارد به اعتبار این حرف حرف درستی نیست تویل صحیح داریم و تویل باطل البته تعویل صحیح در واقع همون حمل باز هم ظاهر نامیده میشه چون دلیلی اومده و معنا رو از, از معنای ظاهر به معنای مرجوح حمل کرده است این هم از بحث الظاهر والمؤول